اما من از فناوری شیمیش واجب است که بله واجبه. چرا اصلا؟ جان؟ چرا؟ حال دیاره به میگو زمانی که این شرایط رو داشته باشه واجبه کسی بیاری. جواب شرط درست نیست. بله دیو جان؟ جواب شرط درست نیست. گف جواب شرط اگر این هفت حالت رو داشت هشت حالت رو باید همراه راه بفاضش. یه راهی هست که لطفا. عطف على الشرط والجواب بالواو والفاء عطف بر شرط اگر بر شرط اومده بود یا عطف بر جواب اومده بود به وسیله یا ف ببینیم که اینجا چی پیش میاد دقت داشته باشید سمسلاه قروهه سمسلاه أول وضيقات كنية ان تعمل و تصابر ان تعمل و وتصابر، ما метووني دوتا ايراب بتصابر بدين ببينت ما دوتا ايراب ما متووني بي چه بدين تصابر بدين ما متووني بديم ان تعمل و تصابر او و تصابر تنجح يعني اگر ما فعل مضارع دیگه ای رو آوردیم عطف به شرط کردیم عطف کی کردیم به شرط نه به جواب چون به جواب حالتش فرق میکنه ما سه دسته مثال اول که عطف به شرط هستند انتحلف و تکذب او تکذبا تعصب ما میتونیم بگیم انتحلف و تکذب و میتونیم بگیم انتحلف و تکذبا تعصب فهمیدید نگم مثلا وقتی شما مثلا یه یعنی تو میتونی دو تا اعراب این بدی اعراب اولش این هست که حرف عت حساب کنی و اعراب تحلیفه بشه بده مثلا انتعمل عمل و تصابر اعراب عملو بش میدی چون واو و میتونی بگی انت و وانت تصابر انا تقدیر کنی لزو دو اعراب براش جایز میشه دو اعراب براش میشه جایز میشه ورد میتونی میتونی مقدم کنی و مترو قادر نکنی ما قبلش اعطف بدی ولی در اون حالت دیگه مجذورش کنی دو تا اعراب براش جایزه این <تنجح>. طاهر فقط اون استفاب ما کاری جواب نداریم اینجا اگر اومده بود اعطف به شرط شده بود به چه این دو حالت جایزه میتونی اونی که معطوفه معطوفه رو ما قبلش معطوف کنی مجذورش کنی و میتونی علی رو مقدم کنی و منصوبش کنی ميتوني بيجي انت تعمل وتصابر اعراب بدي و بيجي ان تعمل وتصابر و <تصفيق> ميتوني بعد از مقدر بقدّر كوني وقتي خلاص ترتيبش نيجي تركيب میشه منصوب مقدره توني در بحث ان در قطرونده خیلی تفصیلی خوندید مفصل که خیلی از جاها این امچی میشه مقدر میشه انا ناصبه خیلی از جاها میشه ایک از جاها چی شو, شو بعد میشه این تحلیف این مشارطیات تحلیف تحلیف و تکذیب تکذیب معطوف به تحلیف هست بس معجومه مثل تحلیف ولی شما میتونید بعد از واضح انا مقدر کنید بگید و تکذرا با تقدیر چی؟ من صوب هست این موقع با استهاد تقدیره منصوبه شماره چهار جواب شرط, شرط, شرط که تا اصلا هستن این خود شرط هست یعنی در تقریب؟ هیچ حالتی جواب شرط, شرط, شرط نه نه نه شما میگید جان؟ مقدره. جواب شک این اون موقع میگیم منصوب هست با ان مقدره موقعی که منصوب هست میگیم اگر جوابش بگیریم باید مجزون بشه مجزون این تنجهه که در آخر اومده نه نه جواب, جواب قرار نمیگیره یا معطوف به تعمل میشه و مجزون میشه یا انی مقدر میشه و منصوب میشه این دو حالتو داره اعرابش دار نه موقع با چار من کسیران یک و يمرض. اما شماره چار به بعد ما سه میتونیم بشودیم دقیق کنید دقت داشته باشید اگر ما اومدیم آقای ملاصحت اگر ما اومدیم عطف به جواب کردیم در مثال عملی عطف به بج... چی بود به در سال در این سمه سال بعدی ما میاییم عطف به جواب میکنیم معنیم ده یا من یعکل کثیران یدخم هر کسی زیاد بخوره مریض میشه خب این واو واو چه هست اگر این واوی هست که بعدش معطوف به یدخم هست به یعکل هست به هست که جواب هست اگر ما قودیم معطویفه به شرط کردیم که رد شد حالا از این مثال به بعد میاره که اگر اومدیم معطویفه چه کردیم بله به جواب اینجا سه حالت جایز میشه میتونیم مجذوبش کنیم مثل یتخم میتونیم انو مقدر کنیم منصورش کنیم و میتونیم این واو واو استعنافیه قرار بدیم و مرکولش کنیم اون موقع فعل مزاری که بعد زیاده اومده چه کارش کنیم معرفيش من يك کثيرا يتخم و يمرض معتوفه بيتخن هست. آو يمربا او آن مقدر هست. آو و يمربو است. حساب کنیم صحبت كنيم جمله جديد. من يتبع حواهو يشقا و يندم و يندما و يندمو يندم يندم سه اير سه چيز ميتوانيم شیش ما تدخیر ينفعك وينفع ینفع او و او و ینفع در قائدینو به وضوح توضیح میدهد نودو دو اذا تل الشرط مبارع مقترن بالواعوی او الفا زمانی که بعد شرط مزارع اومده بود که همراه با واض یا فابود فرقی نمی کند جاز فیه وجهان در اون تا حالت دو اعراب جائز است الجزم و علا الاتف بودن به خاطر اعتف و نصب و علا ان یا منصوب بودن که اونجا ان مزمر است اونجا ان جز که اینو اما اذا تل از جواب مبارون اما اگر این فعل مبارون بعد از جواب اومده بود بعد از شرط نیومده بود بعد از اومده بود؟ بعد از جواب و مسبوق با را و قبل از اون غاب یفاع و مدبود فیجوز فیه الجزم درون جزم جایز است و نفس لما سبق جزم و نفس جائز است به همون که گفته بود یعنی میتونیم معتول کنیم یا انو یزمار کنیم و رفعه للاستعناف و همتونیم جایز است که معتول شه بخاطر استعناف فالسیران در این حالت. حالات جان ضمیر نیستیم ازمار منظور اظمار ان هست خب بله بیای درس بعدی